تشم بیمار روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم مردی شکمش درد گرفت نزد طبیب رفت و از دلدرت شکایت کرد و گفت شب تا صبح از درد شکم نخوابیدم و آمده ام که بیماری خود را درمان کنم طبیب همانطور که رسم است زبان بیمار را مایه می کنند نبزش را میگیرند و از خوراک مریض و از سابقه بیماری می پرسند نبز او را گرفت زبانش را نگاه کرد و از مریض پرسید آیا این دلدرد سابقه هم داشته؟ مریض در حالی که از درد ناله می کرد گفت آه، نه هیچ وقت شکمم به این سختی درد نیامده طبیب پرسید آیا ضربه ای به شکمت خورده؟ مریض گفت: نه، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. و از دیشب نیم ساعت پس از خوردن غذا دلم درد گرفته و تا حالا درد میکند. طبیب پرسید: پیش از اینکه شکمت درد بگیرد چه خورده بودی؟ مریض گفت: مقداری نان سوخته خوردم، دیگر هیچ. طبیب پرسید: یقین داری که نان سوخته بوده؟ مریض گفت: بله یقین دارم چون اگرچه درست رنگ آن را ندیدم ولی تصور میکنم حسابی سوخته بود چون که درست مزی زغال میداد و گویا زغال خالص بود طبیب گفت بسیار خوب، فهمیدم حالا اول علت درد را و بعد خود درد را علاج میکنم آن وقت به معاون خود دستور داد که آن شیشه محلول که چشم را جلا میدهد و روشنی دیده را می افسایت بیاورد و به مریض هم گفت سرت را بالا بگیر تا چند قطره از این داروی روشنی بخش در چشمت بچکانم که داروی بسیار است. مرد بیمار فریاد کشید که آیا حکیم مسخر بازی را کنار بگذار این چه است که من از درد شکم می و تو می دارو در چشم من بریزی آخر درد شکم به چشم چه مربوط است؟ طبیب گفت مرد حسابی تو خودت میگویی نان سوخته زغال را به جای نان سالم خورده ای و رنگ آن را ندیده ای من میخواهم اول چشم تو را علاج کنم که بعد از این نان سوخته زغال شده را به جای نان پخته سالم نخوری چون برای کسی که مزه زغال را میفهمد ولی رنگ نان پخته و نان سوخته را از هم تشخیص نمیدهد علاج بیماری چشمش از بیماری شکمش واجب تر است Play that not